راجعه به حدیث قدیر بخواستم دیگه نگم ولی حیف که نگیدم حدیث قدیر رو حدیث قدیر رو هم اشاره بکنیم و تا بعد برسیم به مطلب دیگری آیه شریف در قرآن یا ایوه الرسول بلغ ما اونزل ای من ربک و لم تفعل فما بلغتر سالته و الله و یعصم و کمینا لا یهدل قوم الكافرین این آیه شریفه شاید آیه شصت و هشتم، شصت و هفتم، شصت و هشتم از سوره مائداست. و سوره مائده بنابر گفته بزرگان و مفسرین و اولمای شاید از از های مفصل قرآن و آخرین سوره مفصل قرآن که در اواخر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله این سوره نازل شده. سوره مائده اواخر عمر رسول الله نازل شده از سوره های مفصل قرآن این سوره آخرین سوره بوده که در اواخر عمر پیغمبر نازل شده این آیه شریف ظاهر آییشین است که ای پیغمبر ما بلغ ما انزل الیک به مردم برسون و تبلیغ کن اون چرا که ما بر تو نازل کردیم و دستوری را که به تو دادیم فا علم تفعل فما بلغت رسالته اگه نکردی و اون دستوری که گفتیم تبلیغ کن تبلیغ نکردی هیچ کار به تعبیر بنده نکرد ما بلغت رسالت. رسالت خدا رو تبلیغ نکرد و اللهو یعصم مکمینا ناز خدا تو رو از شر و گرفتاری و ناراحتی که از ناحیه مردم ممکنه به تو برسه تو رو نگهداری میکنه ان الله الا القوم الكافرين اونایی که میخوان کفران این نعمت بکنن خدا اونها رو به نتیجه نخواهد رسوند خیلی اون اونزلش باشه یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیا این دستور عامه چون اون که سننی یا یعنی خدا به پیغمبرش دستور میده ای پیغمبر مومه هرچی به تو فر کردیم کردین به مردم برسون تبلیغ کن اینو میخواد بگه یا نه سنی و شیعه اده کثیری از علمای سنی و همه شیعه قائلن که نه این یه وظیفه خاص بوده که گفته خدا تبلیغ بکن آیا این آیه به عنوان یک وظیفه عام که هر ما به تو دستور میدیم و هر حکمی که نازل کردیم احکامی که به تو رسوندیم تبلیغ بکن ایرو میخواد بگه یا نه یه وظیفه خاصی رو این در این آیه میگه این رو تبلیغ بکن ظاهران باید عرض کنیم که یک حکم کلی نیست یه وظیفه خاصه به چه جهه؟ به دو قرینه نیست یکی اینکه این آیه چون این که عرض کردم در سوره ماعده است و سوره ماعده آخر عمر رسول الله نازل شده اواخر عمرش اگر این یه دستور عام بود این قاعده بود که اول کار نازل بشه یعنی دیگه ما هر چی تو وحی فرست دادیم هر حکمی که نازل کردیم هر دستوری که دادیم به مردم برسون. اون آخر عمر پیغمبر هم افت بهش همه دستوری که گفتیم به مردم برسونن که معنی نداری لابدی دستور خاطی بوده که میگه به مردم برسون و الا پیغمبر تو آخر عمرش دستورات همه رسونده و اونایی که میبایست برسونه رسونده و اونایی هم که مردم عمل می‌خواستن بکنن نه عمل کردن مدت هاست گذشته پس این به عنوان یک حکم کلی نیست که دستورات ما را به مردم برسان، همه دستوراتمون رو نه این یه حکم خاصیه. اینه قرینه که این آیه شریفه در سوره مائده و در آخر عمر رسول الله و الله علیه و آله نازل شد، اینه قرینه. بنابراین که دستور اگه دستور کلی باشه، پیغمبر ما هرچی ما به تو امر کردیم و دستور دادیم به مردم برسون، که اگه نرسوندی، دستور ما رو نرسوندی، گفتن داره. این حرفه فای این نمتف الفا ما بلغتا رسالت هم تمام دستورات ما رو همه دستوراتی که به تو نازل کردیم هرچی دستور میدیم به مردم برسون که اگه به مردم نرسوندی تو پبلیغ رسالت نکردی و به مردم نرسوندی گفتن نداره که این مثلا شاید حرف خوبی اصلا ترزه گفتار گفتار خوبی نباشه وقت بگیم قرآنی رو برمیگیم کلام فسیش خدای تعالی گفتنی نیست این لابد یه مطلب خاصی مورد نظر است که میگه اینی که به تو گفتیم بودیم برسون برسون که اگه اینو نرسوندی که ان هیچی نرسوندی نه حقیقت اینجوری میشه پس این به عنوان یک دستور کلی نیست که هر چی دستور دادیم به تو هر چه نازل کردیم برسون نیست یه دستور خاصه اما این دستور خاص چی, چی هست چه دستور خاصی بوده که خدا دستور داده که ای برسان تو آیه که بیان نشده که چیه ولی دوتا کلمه تو آیه داره یه نشانه از این مطلب یکی اینکه این مطلب به قدره مهمه که اگر ای رو نرسونده هیچی نرسونده چند نه هیچه بقیه یه چیزا هیچه. این تمام مطلب این ارتباطی داره با همه وظایف. و تمام تکالیف و تمام قوانین دین که اگر ای رو رسوندی اونا تکمیل میشه اگر نرسوندی هیچی نرسوندی این فقط یه جمله شونه که این داره, داره مبینه این کلمه مبینه این است که این وظیفه خاصی که حالا به تو گفتیم برسون این از مهمترین وضاعف دینه که اگر اینو رو نرسوندی که ان هیچ نرسوندی زیرا این وظیفه یک ارتباط تمامی با اعتقادات داره با اخلاق داره با احکام داره با وظائف داره با حکومت و رهبری داره اگه اینو نرسوندی رسوندی اگه نرسوندی هیچ نرسوند تمش خراب. پس این اولا از این کلمه در میاد که این یه مطلب بسیار بسیار مهم میسون کلمه ای که خدا دستور داده بررسود یه مطلب بسیار مهم نیست که اگر او رو نرسانه کنه هیچ کار نکرده همه رو خراب میکنه بقا اونا، اساس اونا، دوام اونا، توضیح و شرح اونا ارتباط باعی داره البته اینو بنده میکنه ما ولی هم مقدار از آیه در میاد که ای به مرتبه ای از اهمیت است. و ارتباط کاملی با سایر وظایف داره که اگر اینو نرسونده که نه اون دیگران رو هم نرسوندن اینه مطلب؟ مطلب دیگر الله عصم و کمینا ناس خدا تو رو از شر و گرفتاری و ناراحتی و عذیتی که از ناهی مردم ممکنه به تو برسه خدا تو رو حفظت میکنه پس از اینجا معلوم میشه این مطلب این مطلب خاصی که باید پیغمبر برسانه یه مطلبی است که مورد نارضایتی مردم بوده. دوست نداشتن مردم نمیخواستن و ممکن بوده در اثر این مطلب برسوندن این مطلب اسباب ناراحتی و عذیت پیغمبر رو فراهم کنه. میگن نه خاص ما تو رو نگهداری میکنیم ما تو رو حفظ میکنیم و اون چه مطلبی است که به مرتبه از اهمیت با ارتباط تمام دین از اول تا به آخرشه و اون چه مطلبی است که همه مردم یا کسیری از مردم اکثر مردم ناراضی و پیغمبر در دلش میترسیده از مطلب خدا میگه نترس و اینو برسن و ما تو را حفظ میکنیم مثلا نماز اینجور بوده روز اینجور بوده حاج اینجور بوده زکات اینجور بوده یا خلافت اینجور بوده حالا ما نمیگیم چی بوده این دوتا تا قرینه در روایت در آیه شریفه قرینه است برای اینکه اون چیزی که خدای تعالی امر کرده به رسولش که او را برسون این دو تا مطلب باهاش بوده یکی از نظر اهمیت ارتباط با تمام دین داره و دیگر از نظر ازمی شاید این که مردم نمی پسندند و مردم ناراحتند و ممکنه سبب ناراحتی رسول الله بشمند و اللهوی عصمو کمینا نا این دوتا مطلب از آیه در این تا اینجا آیه باشی کنا روایات شیعه که همه متفهبند این آیه در قضیه قدیر خم نازل شده و دستور داده شده بود به پیغمبر که این امر ولایت و خلافت امیر المؤمنین رو ابلاغ کند به مرد. حالا چه دستور داده شده بود؟ تو روایات هم من مراجعه نتونستم بکنم از می شود ولیکن پیغمبر در دلش می ترسید از این مطلب دشمنان امیرالمومنین زیاد بودن همین اصحاب کزایی که فعلا دور پیغمبر بودن همینا اینا باباشون برادرشون خواهرشون دخترشون پسرشون رو همین علی کشته. حالا میخواد ای رو خلیفه کند بر اینها و امام کند بر اینا اینا برند زیر بار وقت در حضرت رمیری که سلام و در زمان وفات رسول الله عمرش مثلا سی سه چهار سال بود حالا پیر مردها و یا عرب کرد کنم و خودشون کوسه انالحق دارم نویزنم یا میگم زیر بار این اینا شرائط شرائطی بود که دشمنها اطراف پیغمبر زیاد و حقلها و کینها در دلشون از علی زیاد و سن علی هم سن جوان حالا میخواد این رو برتری بده و بالاتر و امام و رهبر و قائد این قوم قرار به همون می ترسید که تکذیبش کنم زیر بار نرن از می شود کرکردن ها منطبع بله های اصلا نا خیلو خوبی دستوری بود چا روایاتشی این چنینه مرحوم امینی رضوان الله تعالی علی شده که در کتاب القدیر این بزرگوار از سی نفر از علمای عامه از مفسرین و غیر مفسرین از علمای عامه نقل میکنه که این آیه شریفه در قضیه قدیر خم و قضیه ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به نزول این آیه که این آیه در این مورد وارد شده خیلی اینا رو نقل میکنه و کتاب هاش رو نقل میکنه نویسنده هاش رو نقل میکنه این خصوصیاتش رو نقل میکنه به حالا بعد ارز میکنه این راجع به این پس بنابراین از علماء عامه هم سی نفر از علماء عامه از مفسر و غیر مفسر اینا قائلن که این آیه در قضیه نصف خلافت امیران مومنی حالا من میگم خلافت اونها خلافت نمیگن راج به قضیه قدیر خون بارد شد و اجمال قضیه قدیر خون اجمالش این است که رسول الله صلی علی و آله آخر عمرش که ماه زلحجی حج رفت و ماه سفر سال بعد فوت کرد سه ماه بینش فاصله بود آخر عمرش حجی رفت که اسم ای حجت الوداع است و تقریبا تمام مسلمان آخر عمر پیغمبر اسلام توسعه پیدا کرده بود به تمام جزیرت العرب و به قسمتی از یمن و نمیدونم هبشه و مبشه و اونجه های شده بودن من که حالا ولد نیستم ولی اعلام کردن که رسول الله میخواد بره حج و هر کسی که طالب از بیاد از این که حج رو بیاموزد بیاد یاد بگیره. لذا در روایات داره عدد حاجی های اون سال که آمدن با رسول الله از اهل مکه خودشون ادهی بودن و بقیه از اطراف از هفتاد هزار نفر نوشتن تا سد و نفر تا سد نفر حداقلی که تو کتاب نوشته شده هفتاد هزار نفر حد اکثرش سد نفر اینقدر جمعیت حالا ما هفتاد هزار نفر میگیریم آمدن برای حج پیغمبر مناسک حج رو که انجام داد دلال رو ظاهران دستور داد که همه حاجی یا فردا بیان بیرون برای بیان دنبال پیغمبر ک به همه از مکه آمد بیرون از می شاید نزدیک جخفه جخفه تقریبا ما بین مکه اومدی نه راه وسط راه جخفه که یکی از میغات هاست نزدیک جخفه نه خود جخفه نزدیک جخفه توی بیابانی یک آبی نهر آبی قدیر آبی چاه آبی اسمش قدیر خون بود در اونجا از شاید خیمه ها رو گفت بزنن. فرمود سب کنید هر کسی از عقب مونده بیاد هر کسی هم که جلو رفته بریم خبرش کنیم برگرد تمام این مسلمونا همه رو 70 هزار نفر رو جمع کرده اینجا. همه رو جمع کرد و اون روزی که پیغمبر اینار رو جمع کرد خیلی خیلی هوا داغ بود شاید تو روایات داره که بعضی اواهاشون رو پاره نصفش زیر میندافتن نصفش رو کلهش از شدت گرم. خوب اینا جمع کرده برای اون مطلب مهم که مخاطب خیلی خوب نماز ظهر رو خوندند و از مشاد بعد از نماز ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله خطبه خون. البته این خطبه ی روز قدیر در کتاب ها مختلف نقش شما تفسیر صافی رو که در ذیل همین آیه مراجعه کنین شاید دو صفحه سه صفحه خطبه قدیر و از طرق شیعه مفصل ناشد که مشتمله بر مطالب زیاد و یه مقدارش در بیان شعن امیرالمومنین و المومنه و هم مطالب دیگری راجع به امور مسلمین خلاصه مطالبی بیان شد ولیکن چیزی که هست در کتب سنیا مختصر نقل شد که پیغانبر جمع کرد مردم رو خطبه بخون و اجمال مطلب مقدمات و مخراتش رو که بذاریم کنار اجمال مطلب رسول الله صلی الله علیه حمد و, و صنای الهی رو کرد و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیعات اعمالنا من یهد الله فهو المهدد و من یوزلل فلان تجدله ولی لگیان مرشده و امثال زالک حمد خدای تعالی رو کرد و بعد اونم فرمود مردم من نزدیک شده مرگم و خدای تعالی به من خبر داده که رسالت تو تمام شد و مرگ من نزدیکه من رو چگونه پیغمبری یافتید گفتان چنین و چنان و تو خوب پیغمبری بودی و آمدی برای ما چی رحمت کشیدی چنین کردی چنان کردی چنان کردی و خدا به تعبیر بنده تو رو خیر بدهد خلا تو رو چنین کند که ما رو خلاصش به کمال رسندی به تعبیر بنده البته فرمود که آیا ای الناس آیا شما ایمان به خدا و به رسول و به روز جزا و به از میشاد جنت و نار دارید یا ندارید گفتند بله دارید. فرمود من مولاکم و ولیکم مولا و ولی شما کیست گفتند مولای ما خدای تعالی و ولی ما رسول خداست خوف اللهم مشهد خدایا تو شاهد باش بعد از این البته شاید مثلا جملات دیگه هم باشه امیر علی رو صدا در. فرمود ایوهن الناس من کن مولا فهازا علی جن مولا هر کسی که من مولا هستم باز شاید تکرارم کرد الست تو اولا بکن من انفس آیا من اولای به شما از انفس شما نیستم هست شدنان قال من کن تو مولا فهذا علیجیون مولا البته خود ریزایی رو باید زیاده پیغمبر برد علی رو بالا دستور رو داده یه منبری از جهاز شطور بسازند یا از سنگ بسازن هر دو شاید داره منبری ساختند و بعد علی رو برده بود بالا به جوری که دست علی رو گرفته بود و بلند کرده بود که تمام مردم علی رو میدیدن بعدن میگم که علی و مولا شد یا علی دیگه بوده؟ فحالاً علی و مولا اینا رو فرمود و بعد فرمود اللهم وال من والا و عاد من ادا منصور من نصر و خذل من خذلا الا اخر این اجمالی بود خیلی اجمال از حدیث قدیم این روایت قدیم مطلبی را که اینجا عرض می سی نفر از علماء سنونی گفتن آیه شریفه بلغمان زللک در قضیه قدیر خون وارد شده فرض کن نگفت فرض کن آیه راجع به ارزم بلغ بلغمان زللک اصلا نداری فرض میکنیم نداری خود قضیه قدیر خم را سی نفر از اصحاب رسول الله خود قضیه را حکایت کردن سی نفر از اصحاب رسول الله که خودشون در اون مجلس حاضر بودن روایت کردن که پیغمبر علی را آورد و این کیفیتو فیتو اینو گفت و اینو گفت و اینو گفت حالا ما به آیه شریفه کار نداریم که آیا این آیه در اینجا نازل شده یا نشده بگو نشده نمیخواد بگی شده آیه نشده ولی قضیه قدیر خون قضیه‌ای است که شاید روایت متواترتر از اون تو روایات ما نباشه 360 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله این روایت رو نقل کردن و این در دسترس ما هست چند از, از اصحاب که یکیش یه موردش اینه که امیر در یه جایی که زمان خلافتش در یه جایی شاید در روی کوفه نزدیک کوفه بوده که اصحاب پیغمبر جمع بودن ادهی از اصحاب پیغمبر فرمود ایوهننا جمع بودن اده زیادی فرمود ایوهننا هر کسی که خودش به گوش خودش از زبان رسول الله تا والی واله شنیده که گفت من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم موال منوالا و من آذا بلندش شهادت بده در همون مجلس سی نفر از اصحاب رسول الله والی واله بلند شدن شهادت دادن سی تاشون اونجا شهادت که ما خودمون به گوش خود فرمود هرکی گوش خودش شنیده آن نه اونی که روایت شنیده هرکی خودش شنیده بلند شه بگیر سی نفر بلند شدن شهادت دارن یکی از اونایی که شهادت ندارد انس ابن مالک بود انس ابن مالک قلام رسول الله بود و بعدم پیغمبر آزادش کرده حضرت احمیل سلام و علیه بهش فرمود انس تو نشنیده بودی گفتم من پیر شدم یادم رفته رو فیرمت یادم رفت گفتش که امیدوارم اگر دروغ بگی خدای تعالی تو رو مبتلای به مرزی بکند که ایمان او رو سطر نکند مدت خیلی مختصری شاید گذشت این آقای انس مبتلا شد به مرز برست هیسی به خودمون سفید میشه پوسته برن و یک کیفیت خاص به سرش براس مقتلع به سرش شروع بعد این حیمت پایی این اماماره می کشید جلو هرچی این مرز میمار جلو اماماره می کشید جلو به لاخره اماماره بود تو که اگر میشهش نیتونه بکشید که تا اینجای اماماره کشید ولی مرزت برست آمد پایی از یک که این چطور شد مبتلای به این مرض شدی؟ گفت: دعای بنده صالح خدا بود که من رو مبتلا کرد. من مبتلای به این مرض شدم دو واسطه دعای بنده صالح خدا. خلاصه سی نفر تو همون مجلس کسانی که بلا از رسول الله شنیده بودند، شهادت دادند. بنابر این از 360 نفر در کتاب القدیر از 360 نفر از اصحاب رسول الله که خودشون به و خودشون شنیدن و بلاواسطه نقل کردن روایت نقل میکنن که اینا خود گفتن ما شنیده و به هسته به قاعده خب 70 هزار نفر از صادق سلام الله علیش دیگه روایت یادمه که حضرت صادر سلام الله علیه و گریه میکرد نگفت هر حقی تو دنیا با دو تا شاهد ثابت میشه جدم امیر هفتاد هزار شاهد داشت و حقش رو از بین هفتاد هزار شاهد داشت و حقش رو از بین بردن علا کل حال سیصد نفر از اصحاب رسول الله شهادت دادند و نقل کردند کسانی که حدیث قدیر رو نقل کردن و با واسطه شنیدن شاید از 10000 هم بیشتر باشه ولی لازمه که ها در حدیث قدیر نوشته شده کسانی که حدیث قدیر رو شنیدن و خودشون به واسطه نقل کردن کسانی که حدیث قدیر رو شنیدن از دینگری از آصهاب رسول الله کسانی که با یک واسطه شنیدن کسانی که با دو واسطه شنیدن کسانی که با سه واسطه شنیدن همین جور لذا که کتابها درباره یه حدیث قدیر نوشته شده و همون بده آقای بزرگواری که از کردم آقای صاحب عبقات میرهام دوسی شاید یه جلد از این کتاب کلوف کلوف دار در حدیث قدیر <تصحیح> <تصحیح> کتابی حدیث قدیر رو نقل درد از مرحوم امینی میفرمد 25 و از علماء سنی کتاب مستقل در حدیث قدیر نوشتن 25 نفر از علماء سنی در حدیث قدیر کتاب نوشتن وقت چقدر حدیث نقل کننده این حدیث ها حدیثی قطعی تر از این شاید در بین حدیث ما نوشت چنین این حدیثی حالا فرض بکن و ارکردم روایت قدیر بنابر نقل شیعه شاید 3-4 طفع باش. بعضی از سنی‌ها عین شیعه همین چهار تا این سفار رو کرد کردن عین من که مختص به شیعه, شیعه باشه. ولی بعضی از سنی ها. بعضی از سنی‌ها کمش کردن یه تیکه اشو ناراحت ولی این جمله الا تو اولا بکوم من انفسکم قال اللهم ما قال من کنتم مولا فعلی مولا این است که دیگه روایات متواتر همه این رو نقل شده من کنتم مولا فعلی مولا بعضی همین جمله رو کرد الو کلون از مطالب این حالا عرض کردم پس بنابر این منظور ارزبنده این است که بافرض که آیه بلق ما انزل تو رو که از کلن 30 نفر از علمای سنی میگن در شان امیرالمومنین و در, در قضیه قدیره خوب نباشه آیه قدیر نمکنه و آیه بلق ما انزل الیلاک رو زمین چطور اثبات این مطلب فرض میکنه آیه نازل نشده ولی ولی لاخره پیغمبر مطلب رو گفته حالا دستور اومده از جانب خدای تعالی و تأکید شده به مطلب نه هل در دستور خاصی نیماده ولی پیامبر این مطلب رو به مردم رسونده و این روایت رو 360 رو بر از صحابه نقل کردن و کتابه در این باره نوشتن که من حالا این امروز یه مانعی رسید می‌خواستم اینا رو بنویسم اجمالش رو برای شما ولی دیگه فرصت نشد مانعی رسید از می‌شود به اینکه یه کسی از علمای سنی میگه که فلان کار ببینم اینجا نوشتم بله ظاهرا اون نبود بله ابو مشعل ابو سعید سجستانی 17 جز کتاب نوشته به نام الدرایف حدیث این کتاب از ابو لموشن ها و که ها جور نیست که همشون با امیر المؤمنین بعد باشند که اکثرشون دوست اهل بیت ها منتظر به اموال خلیفه نمیشناسنه ولی بالاخره هدات امام المؤمنین جلد در کی نوشته با سید ابن نم، نم میگه یا کسی از قول کسی نقل میکنه میگه در فلان جا بودم در کتابخانه فلان جا دیدم نوشته جز 15م از کتاب فلان در حدیث قدید نوشتن آن که حالا بنده یادم علا کل حال مطلبی سوازه و قابل کار نیست کسی هم چه قضیه عجیبی واقع شده در عالم با این شرایط قضایی اقعب رفته اقعب اینجا رفته ها برگردم اینجا وایستیم توی این آفتاق تا اونا برگردم اونای هم که رفته نمونده اونا هم برسن تمام جمشن خواهی مده رو بگیم و بعدن هم فرمود فلیبلغ شاهد الغاعد حاضرین هرکی شنیده موظفه که به غاعدین درسونه آخر خود فرمود. این مطلب به این مهمی رو رسون درسون. من البته اینا رو باید مراجعه کرد قضیه یه عقبه یه قضیه ایست برای رسول الله که ادهی از همین اطرافی های پیغمبر پیغمبرم خواستم بکوشم که از گردنه اوور میکرد شطور پیغمبر از عبور اوور میکرد رفتن بالا یه گردنه کوهی شب بود اوور میکرد البته نیمونم چی انداختن مثلا فقط اون یه رفت درخونزد پی تلاوی کردن بالا پایین که این شطور رم کنه و پیغمبر رو بیاندازه از بالا کوپایی بنده خیال میکنم مراجعه نکردم این روز همچور در ذهنم از اون سابقه هست قضیه ارز میشود به اینکه که عقبه بعد از قضیه قدیر واقع شده والله الله عصب که مینن نا بعد مراجعه کرد البته این رو به طور جرز مرد میخواستم مراجعه کنم امروز مانع رسید و فرسته نشد. علا کل حال ما تو رو حفظت میکنیم تا تبلیغت رو بکن و کسانی که بخوان این مطلب رو و این نور رو و این حقیقت رو خاموش کنن ما نمیذاریم خاموش بشین عرض کردم امیر واقعا چیز عجیبیست این قضایهاش که اون بنده خدای شاعر گفته بود که دوستان از ترس و تقیه از مخفی رو و دشمنان از کینه و حسد فضائلش مخفی می با از که تمام سرتاسر سر عالم پر از فضائل علی تو کتابه خب یه چیز عجیبیست خدا نمیذاره یه خاموش بشه و واقعی عاصمون که ناز خدا حفظ میکند و نمیذارد که این نور به این بره و خاموش بشه این مطلب راجع به اصل قضیه قضیه یه کلمه دیگه میکنم باشه دیگه و اون کلمه این است که دومرتبه همون وقت شروع میشه که مولا یا چی؟ من کنتو مولا فعلی مولا اگر نظرتون باشه در هفته قبل در اون آیه این نما ولی دو گفتیم برای لفظ ولی و مولا شاید پفتا تا نو تا معنا در کتاب لغت موجوده ولی با قریمه این نما و با های دیگری اونجا عرض کردیم مراد از این نما به معنای ولایت است یعنی این ولی به معنای ولایت زیرا که دوست ما غیر از علی هم داریم ناصر و یار غیر از علی هم داریم از میشد محب غیر از علی هم داریم این نما دلالت میکنه بر حصر به معنی ولایت اونجا اینچنین ناز کردیم و اینجا این چنین ناز میکنیم ان این در این آیهش در این قضیه قدیر رسول الله اولش کردنش و خودش نازک کرده. الله سولا من انفسكم قالوا اللهم بلال من مولاكم و فلجكم قالوا مولان الله و انت فلجن رسول الله قال من كنت مولا فلجم این تو اولا کن من انفسکن این همونه که ان نبیه اولاب المؤمنین من انفسهم و پیغمبر از همه شما بر خودتون هم اولاتره و حق تصرف در جان شما و در مال شما و در همه شعون شما داره از خودتون نسبت به این جهت اولاتره این دیگه قرینش با خود حدیث هست دیگه قرینه نمیخواد و مولا شاید ناصر باشه شاید چی چیچی باشه شاید چیچی باشه این شاید ها دیگه اینجا موضوع نداره با بودن وقت تازه تو این شرایط کذایی این همه جمعیتو متل کردن عقبیا ها برسن جلوی ها برگردن گرما ای ناس علی دوست شما همین؟ این مطلب به این مهمی همین؟ برای این کلمه؟ و توی روایات سنی و شیعه داره که بعد از اینکه امیر المومنین رو این مطالب رو پیغمبر داره بارش گفت وقت مسلمانه شروع کردن به تبریک گفتن و اولین کسی که تبریک گفت به امیر عمر و عبیبک بودن که تا مولای و مولا و مکل مؤمنن و مؤمنا سلح و زبیر بودن عمر و بودند، بودن اومدن بخن بخن یا حسن، از بحت مولا و مولا کل مؤمن و مؤمنم اینا اهل زبون بودند، اینا اهل لسان بودند، اگه مولا معنیش عبد بود مولا معنیش ناصر بود مولاش معنیش محب بود اینجوری حرف نمیزنن باش که یکی از اون به رسول الله همون شاعر که بود که اسمش اون هفته گفتم حسان نبینه ثابت بود شروع کرد به شعر گفتن حالا ملاحظه ببرم که این حسان چی استفاده کرده از کلام رسول الله که این رو گفته این حسان بعدنم از جمله‌ی مخالفی امر المؤمنین شده ولی در واقع اون وقت از اصحاب رسول الله و شاعر زمان پیغمبر بوده یک شعر مفصل و یک قصیده مفصل گفته است در این باره و اون قصدیدش حالا دست خطش اینه همو یوم القدیر نبی هم به من و اکرمی به نبی منادی ها ما در روز قدیر پیغمبر اون مردم رو ندا کرد و بزرگ است و برتر است اون پیغمبر ندا کننده یقول من مولا و ولی و و فمن مولا و ولی کی مولاش منم من مولای کی هستم آیا من مولای شما و ولی شما نیستم فقالو ولم یبدو هنا کتعادیا همشون گفتن ادابتی چیزی رو اظهار نکردن همشون گفتن الهوکم مولانا و انت ولینا ولن تجد مننا لک یوم عاصیا ما هیچ یک فرمان تو را مخالفت نمی کنیم به پیغمبر گفتن فقال له قم يا علي فإنني رزيت كم من بعدي إماماً وهاديا فذلك از, از مذم اقرار گرفت او وقت فرمود قم يا علي فإني فإني رزيت كم من بعدي إماماً وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أطباء الصدق مبالیا. شعرش مفصله ولی دو تاش این بود که کردم. بنابراین اینا اهل زبان و فسیح در زبان خودشون و شاعر و گوینده زبان خودشون از این جمله چی فهمیدن؟ من کنت مولا فهازا علی جن مولا همینو فهمیدن قال من کنت فلی جهو فهاز رزی تو که امامن و حادی ها لهو ای باشید ای امام شماست این خادی شماست این خلیفه رسول الله بعد از من خواهد این جملات پس بنابراین به قوله عرض سند و دلالت روایت هیچ جای ترسید دارش البته کتاب های سنیاری که با کنگی نموزیر بار برن هی از این ور از اون هی اشکال میکنن علم ویچار ویچاره رضوان الله تعالى علیه مجمعین همه یه این خوردریزای سنیا رو نشستن تو کتابش رو نوشتم جوابش هم نوشتم از کسی حال داره فاید بره اونا رو بخونه ولی بلاخره حدیث قدیر یه مطلبی بسیار بسیار مهم که از به این نیست دیگه تا قیامت این حدیث روی کسی میتونه بسمالیش کنه این مطلبی خیلی خوب مطلب اینه امشب تمام شد اگر زنده موندیم انشاالله شاء الله البته راجع به امیر المونی به اینجوریه که تمام میشه که راجع هم. همجوره هم. همجوره است استقال بشه وجه همجوره است آیا تو رو یاد الهام ولی ما این مطلب رو فعلا می‌خوام خاطره بریم ان شاء که دو جلسه دیگر هم راجع به امامت سایر ائمه و حضرت مهدی صلوات الله علیه و او رو هم بحثش بکنیم و یه خواهی می بید آمه کنه سلام